سلام و صد سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان. امروز هم با یک قصه دیگه در خدمتتون هستیم. اسم این قصه هست تابوت بلورین. بریم که با هم دیگه بشنویم. حالا دیگه نذارید کسی بگه که خیاطی فقیر نمیتونه در این دنیا زندگیش رو بچرخونه و به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنه. چیزی بدون تلاش و کار حاصل نمیشه. روزگاری خیاط جوان و فعالی که ذهنی تیز داشت پا به سفر گذاشت و سر از جنگل درآورد. چون راه رو نمیدونست خیلی زود گم شد. شب شد و اون کاری جز پیدا کردن محلی مناسب برای استراحت نداشت. اون میتونست بستری کاملا راحت از علفهای نرم برای خودش درست کنه. اما ترس از جانوران وحشی ذهنش رو آشفته کرده بود بالاخره تصمیم گرفت که شب رو در بالای درختی وحشی به صبح برسونه اون درخت بلوط بلندی رو پیدا کرد از اون بالا رفت خیالش کاملا راحت بود چون اتوی بزرگش رو به همراه داشت وگر ممکن بود باد شدیدی که بالای درخت میوزید اون رو با خودش ببره نیمه ای از شب گذشته بود. اون که کمی ترس برش داشته بود، متوجه روشنایی شد. با این امید که اون روشنایی نشانه وجود خانه و پناهگاهی بهتر از بالای درخت باشه، با احتیاط پایین اومد و به سمت نور رفت. به کلبه رسید که تماماً با نی و علف ساخته شده بود. با جرأت تمام در زد. در باز شد. و اون در روشنایی کم نور درون کلبه پیرمردی رو با موهای کاملا خاکستری و جامعی از تکه پارچه های وصله به رنگ روشندید. پیرمرد با صدایی خشن پرسید کی هستی و چی میخوای؟ جوان جواب داد خیاتی فقیر هستم در جنگل به شب خوردم. خواهش میکنم در کلبت به من پناه بده تا شب رو صبح کنم. پیرمرد با صدای خوش گفت راهت رو بگیر و برو من کاری به خونه به ندارم جای دیگه ای پیدا کن بعد از این حرفها سعی کرد در رو ببنده و جوان رو بیرون کنه اما خیاط لباس پیرمرد رو محکم گرفت و خیلی جدی تقاضا کرد اجازه بده در اونجا بمونه پیرمرد که به نظر نمی رسید دل رحم باشه بالاخره تحت تاثیر التماس های خیات قرار گرفت و گذاشت که وارد کلبه بشه بعد مقداری غذا بهش داد و بستری کاملا مناسب در گوشه اتاق در اختیارش گذاشت خیات خسته دراز کشید و تا صبح آرام آرام خوابید صبح زود بر اثر سرما و صدایی خیلی بلند از خواب پرید جی قدادی بلند دیواره چوبی کلبه رو به لرزه انداخته بود خیاط به خودش دل و جرعت داد از جاش بلند شد، تند دو سری لباس و رختخوابش رو به کناری انداخت و بیرون دوید. در اونجا نرگاو سیاه تنومندی رو دید که با گوزن زیبای بزرگی دست و پنجه نرم کرد. اونها با خشم زیاد به همدیگه حمله ور می به طوری که زمین زیر پاهاشون به لرز افتاده و سر و صدا اون عرهاشون تمام فضا رو پوشنده بود. تا مدت زمانی، اصلا معلوم نبود برندهٔ نبرد کدوم یکی از اوناست اما بالاخره گوزن شاههاش رو با قدرتی بسیار در بدن هماورد خودش فرو کرد نرگاو با قرشی هراسناک روی زمین افتاد و با چند ضربه دیگه جان از بدنش بیرون رفت خیات مات و مبهوت نبرد رو تماشا میکرد کاملا بی حرکت ایستاده بود که یک دفعه گوزن به طرفش یورش برد اون رو در بین شاخهای بزرگش گرفت و با سرعت زیاد از روی گودالها، پرچینها، تپهها، شکافها و جنگل آب گذشت. خیاط که نمیتونست کاری بکنه با دستاش محکم به شاخهای گوزن چسبید و خودش رو به دست سرنوشت سپرد. احساس میکرد که در حال پروازه. بالاخره گوزن از کنار پرتگاهی گذشت و خیاط رو به آرامی بر زمین گذاشت جوان که احساس میکرد مرده کمی صبر کرد تا هوش و حواس خودش رو پیدا کنه وقتی احساس کرد کمی سرحال اومده گوزن این محکم بر دری زد که در صخره قرار داشت و اون رو باز کرد شعله های آتش بیرون زدند و چنان ابری از بخار در پیش بلند شد که گوز مجبور شد سرش رو به طرف دیگه بگیره تا چشمش آسیب نبینه. خیات اصلا نمیدونست چیکار کنه یا برای دوری از اون همه آتش و بخار از کدوم را در بره. دلش میخواست به عقب برگرده و یک بار دیگه در بین انسانها باشه. همچنان که مردد ایستاده بود از داخل سخره فریادی خطاب به اون به گوش رسید. نترس و داخل شو. آسیبی به تو نمیرسه. هنوز تردید داشت، اما به نظر می رسید نیروی مرموز اون رو به طرف خودش می کشه. از در گذشت و به تالاری وسیع رسید. سقف، کف و دیوارهای تالار با کاشیهای براغ پوشونده و روشون نقشهای ناشناخته کند کاری شده بود. اون با شگفتی بسیار به اطراف خیره شده بود. میخواست چرخیدن چرخی در اطراف بزنه که صدایی به گوشش رسید. به طرف سنگ وسط تالار برو. خوشبختی در انتظار ته. حالا شجا شده بود. کاری رو که بهش گفته بودند انجام داد. همین که پا بر سنگ گذاشت آرام آرام به اعماق زمین فرو رفت. با رسیدن به زمین سفت خودش رو در تالاری به اندازه تالار بالایی دید. اما این یکی خیلی شگفت انگیزتر و در خور تحسین بود. دور تمام دیوارها تاقچههایی انباشته از انواع ظروف شیشهای با نمایی به رنگ روشن یا آبی قرار داشت. کف اتاق دو محفظه بزرگ بلورین در مقابل همدیگه قرار داشتند که فوراً حس کنجکاوی اون رو برانگیختند. به طرف یکی از اونها حرکت کرد. نگاهی به داخل اون کرد و چیزی دید که شبیه یک مینیاتور از قصری زیبا با کشزارها انبارها، استبلها و تعدادی ساختمان بود. همه چیز خیلی ریز بود، اما به زیبایی و با دقت طراحی شده، و ظاهرا به دست هنرمندی خبره درست شده بود. اگر صدا اون رو برای دیدن تابوت بلورونی که در سمت دیگه قرار داشت، صدا میزد، اون همچنان محو تماشای اون اثر اعجاب برانگیز می‌موند. خیاط با دیدن دوشیزهی بیش از حد زیبا در تابوت بلورین از تعجب ماتش برد. انگار دوشیزه در خواب بود. گیسوان زیبای بلندش مثل ردایی گران قیمت اندامش رو پوشونده بود. چشماش بسته بودند اما رنگ روشن چهره و نوار رنگینی که به گیسوانش بسته بود و با هر نفس بالا می و فرود میومد، تردیدی باقی نگذاش که اون زنده است. در حالی که خیاط با قلبی تپنده به دوشیزه یه خفته خیره شده بود اون یک دفعه چشماش رو باز کرد و زوق زده و فریاد کنن گفت خدای بزرگ آزادی نزدیکه سود باش، سود باش کمک کن از این زندان بیرون بیام فقط چفت تابوت رو بردار تا آزاد بشم خیاط بدون هیچ معطلی اطاعت کرد دوشیزه در بلورین رو کنار زد از تابوت بیرون اومد و با عجله به گوشه تالار رفت بعد خودش رو در جامعه بزرگی پیچید بعد روی سنگ نشست و از مرد جوان خواست تا نزدیک بشه اون با مهربانی به مرد جوان گفت ناجی من مدت زمان طولانی چشم انتظارت بودم خدای مهربون تو رو برای آزادی من فرستاد و بالاخره به تمامی قصه‌ام پایان داد مقدر شده که شوهرم باشی و دلدارم باشی هرچقدر دارایی و ثروت بخوای به همراه قدرت بهت میدم تا باقیمانده عمرت رو با آرامش و خوشبختی بگذرونی حالا بشین و به گوش کن من دختر ای ثروتمند هستم وقتی خیلی کوچیک بودم پدر و مادرم مردند برادر بزرگترم مراقبت از من رو به عهده گرفت زیر نظر اون من با دقت تمام تحصیل کردم. ما همدیگر رو از ته قلب دوست داشتیم. علایق ما بسیار شبیه هم بود. طوری که من و برادرم تصمیم گرفتیم که هیچ وقت ازدواج نکنیم و تمام عمرمون رو در کنار همدیگه بگذرونیم. توی خونه چیزی کم و کسف نداشتیم. دوستان و همسایگان بیشتر اوقات به دیدارمون می اومدن و در خونه ما بروی همه باز بود. اما شبی غریبه به خونه بزرگ ما اومد و از ما خواست که شب رو اونجا بمونه چون دیر وقت بود و تا شهر فاصله زیادی باقی مونده بود ما اون رو پذیرفتیم و با اون با نهایت ادب و احترام رفتار کردیم سر میز شام اون حرف دلنشین بر زبان آورد و حکایت های سرگرم کننده ای تعریف کرد برادرم چنان بهش علاقه شد که ازش خواست دو روز دیگه هم در خونه ما بمونه مرد غریبه هم بعد از کمی تردید قبول کرد مدتی طولانی پشت میز شام نشستیم بعد برادرم مهمان رو به اتاقی راهنمایی کرد من هم با عجله به اتاقم رفتم چون خیلی خسته بودم و دلم میخواست بخوابم تازه پلکام گرم شده بودند که با شنیدن صدای ملایم و زیبای موسیقی از خواب بیدار شدم خیلی تعجب کردم و چیزی نمونده بود که ندیمم رو که در اتاق کناری خوابیده صدا کنم اما با بخت زیاد احساس کردم که وزنی سنگین روی سینم افتاده و تمام قدرتم را از من گرفته بی حرکت دراز کشیده بودم و صدایی از من در نمی‌آمد در همین حین در روشنایی چراغ شب دیدم که غریبه وارد اتاق شد ولی دو در ورودی محکم قفل بودند اون نزدیک شد و گفت که با هنر جادویش کاری کرده که موسیقی ملایم منو بیدار کنه و خودش هم از میان میله ها عبور کرده تا پیش من بیاد و پیشنهاد ازدواج بده. تنفر من از جادوش به قدری زیاد بود که اصلا نمی از اون اطاعت کنم. مدتی بی حرکت منتظر بود. بدون شک امیدوار بود پاسخی مناسب بشنبه. وقتی دید من کاملا ساکتم و حرفی نمی‌زنم با عصبانیت گفت که راهی برای در شکستن قرورم پیدا می‌کنه. بعد با خشم زیاد از اتاق بیرون رفت من شب رو با ناراحتی خیلی زیادی سر کردم نزدیک صبح بود که کمی خوابم برد همین که بیدار شدم از جا بلند شدم و شتابان پیش برادرم رفتم تا بگم چه اتفاقی افتاده اما اون توی اتاقش نبود و خدمتکارش گفت که صبح خیلی زود برای شکار با غریبه بیرون رفته ذهنم پریشون بود با عجله لباس پوشیدم، اسبم رو زین کردم و به همراه یک خدمتکار به تاخت به طرف جنگل روندم. لحظه توقف نکردم. قبل از اون که مسافتی طولانی رو طی کنم، غریبه رو دیدم که به همراه گوزنی زیبا به سمتم میاد. از اون پرسیدم که برادرم کجاست و گوزن رو که از چشمانش اشک جاری بود، چطور گرفته؟ به جای جواب، زد زیر خنده. اینقدر خشمین شدم که فوراً تپانچم رو بیرون کشیدم و گلوله شلیک کردم اما گلوله از روی سینش کمانه کرد و درست در وسط پیشونی اسبم قرار گرفت بر زمین افتادم غریبه کلماتی بر زبان آورد که هوش و حواسم رو مختل کرد وقتی به خودم اومدم دیدم که در این تابوت بلورین در دهخمه زیرزمینی مدفون شدم جادوگر دوباره ظاهر شد و به من گفت که برادرم رو به گوزن و قصرمون و تمامی کسانی را که از اون دفاع می به موجوداتی ریز و کوچک تبدیل کرده و همه رو در محفظه شیشه جا داده. بعد تمام وسایر رو به صورت بخارهای متفاوتی درآورده و اونها رو داخل شیشه های کوچیک کرده. اگر من به خواسته اون تندر می دادم، راحتی این ظروف شیشهای رو باز میکرد و همه چیز به شکل اول خودش برمیگشت از کارهایی که قبلا انجام داده بودم دیگه حرفی نزدم اون ناپدید شد و منو در تابوتی بلورین زندانی کرد. در اونجا خیلی زود به خوابی عمیق فرو رفتم. در بین بسیاری از رویاهایی که در مغزم شناور بود یکی خیلی خوشحال کننده بود. خواب دیدم جوانی به اینجا میاد و منو آزاد میکنه. امروز وقتی چشمام رو باز کردم تو رو شناختم و فهمیدم که خوابم تعبیر شده. حالا کمک کن. تا خوابم رو عملی کنم. اولین کار اینه که محفظه شیشهی رو که قصرم درون هست رو روی این سنگ بزرگ بگذاریم. همین که این کار رو انجام دادن، سنگ به آرامی به هوا رفت و اونها رو به تالار بالایی برد. اونها محفظه رو به فضایی باز بردن. بعد دوشیزه در پوش محفظه رو کنار زد. تماشای قصر، خونه و کشزارها ها واقعا شگفتنگیز بود. تمامی چیزهایی که در محفظه بودند کم کم بزرگ شدند تا به اندازه اصلی خودشون رسیدند. بعد زوج جوان به کمک سنگ باز به تالار زیرزمینی رفتند و تمامی ظروف شیشهای پر از بخار رو بازگردوندند. همین که چوب پنبه روی شیشه ها رو برداشت بخارهای آبی رنگ از اونها خارج و به موجوداتی زنده تبدیل شدند. بانو خیلی از خدمتکاران و ندیمهاش رو شناخت و خیلی خوشحال شد شادی اون زمانی کامل شد که برادرش رو پیدا کرد. برادرش بعد از کشتن جادوگر که به شکل نرگاف در اومده بود، به شکل خودش برگشت و از جنگل بیرون اومد. دوشیزه همون روز طبق قولی که داده بود، با خیاط جوان خوشبخت پیوند زناشویی بست. امیدوارم از این قصه زیبا لذت برده باشید. روز و روزگار بر شما خوش.